فصل قاطر پارسی من کوروش شاه حقامنشی من کوروش شاه جهان شاه بزرگ شاه نیرومند شاه بابل شاه کشور سومر و عکد شاه چهار یالم عالم پسر شاه بزرگ کمبوجیه شاه شهر آنشان نوه شاه بزرگ کوروش، شاه شهر آنشان نواده شاه بزرگ چیش پیش، شاه آنشان این اظهارات تبارنامه سلطنتی که کورش پس از برگزاری جشن پیروزی فتح بابل و برقراری صلح در قلمرو پهناور خود بیان می کند نمایانگر طرح امپراتوری و شاهنشاهی جهانی است که همواره راهنمای کوروش بود ارباب جدید منطقه وقتی خود را شاه چهار گوشه عالم اعلام می کرد که فرمول خاص پدر پدرخدایان در تمام زمانهاست به حماسه خود مفهومی وحدت بخش و سیاسی میبخشید. شاه بزرگ هرگز تبار تاریخی خود را که فرزند حخامنش بنیادگذار سلسله شاهان آنشان بود فراموش نکرد از ضمت آنشان قلم روی کوچکی که بزرگی حقامنشیان از آنجا سرچشمه گرفت منطقه کوهستانی بود که بر جلگه دلپذیر و بخشاینده شوشان یعنی مجموعهی که ایلام را تشکیل میداد تسلط داشت و در واقع به آن مشرف بود. شهر شوش پایتخت تخت ایلام بیان از لحاظ عظمت و شکوه ظاهری به پای نینوا و بابل برسد نوعی درخشش فرهنگی و اقتصادی درجه اول داشت. این شهر که در منطقه علیه جنوبی شاهراه سلطنتی 2400 کیلومتری قرار داشت که دریای مدیترانه را به خلیج فارس پیوند میداد از گذر کاروانهایی که فعالیت اقتصادی پر رونقی داشتند بهره می گرفت. شوش در گذر قرنها پشت به فلات ایران داده تمدن درخشانی را پرورده بود که نفوذ آن از مرزهایش بسی فراتر می رفت. آنشان کمی آنسوتر بر روی رشته کوه ها قرار داشت مردمی که آنجا میزیستند، گویی خود را برای تاریخ ذخیره کرده بودند و فضایل سخت کوشی و عادت به محرومیت را در خود پرورش میدادند این منطقه فقیر اما محفوظ حدود سال 700 شاهد ورود قبایل کوچک آریایی از جمله قبایل پاسارگاد بود که نیاکان کوروش به آن تعلق داشتند رسیدن این چادرنشینان جنگجو که زنها، بچه ها و گله های خود را جلو انداخته و پیش می آمدند در مردم ایلام واکنشی ترد کننده ایجاد نکرد. این سواران به محض رسیدن به خدمت رؤسای محلی آمدند. نیز در عوض محلهایی را به آنها واگذار کردند تا در آنجا استقرار یابند. این گروه، رفته رفته به سربازان مزدور تبدیل شدند و مسئولیت دفاع از کل کشور را بر عهده گرفتند اما به برکت ایلامیان ساکنان آنشان به فرهنگی دسترسی یافتند که هرگز با آن آشنا نبودند اهالی ایلام با انتقال سنت تمدن های کهن از جمله تمدن آشور بابل و اورارتو به آنان در واقع وظیفه پرورش و مربیگری این قوم باستانی جنگجو را بر عهده گرفتند اسکان این قبایل آریایی زیر نفوذ ایلامیان در جهت بخشیدن به شیوه زندگی آنان به سوی سرنوشتی که انتظارشان را می‌کشید و به ویژه در کمال بخشیدن و منضبط کردن این فضایل انسانی و نیرویی که قرار بود روزی آنها را به افتخار رساند اهمیت داشت. هنگامی که توصیف آشوربانی پال از شهر شوش را میخوانیم به اهمیت و پیشرفت تمدن ایلام پی می‌بریم. شاه آشور در سال 640 این شهر را ویران کرد، تمام اموال و ثروت آن را به تاراج برد و جمعیت آن را به سامریه تبعید کرد. او میگوید شوش شهر بزرگ مقدس، من وارد کاخهایش شدم، زیورالات، نشانهای سلطنتی، سلاحهای جنگی و اساسیه کاخها را به طور کامل به عنوان قنیمت تاراج کردم و به کشور آشور بردم. زیگورات شوش را ویران کردم که از آجر و کاشی لاجورد ساخته شده بود شاههایش را که از مس درخشان بود خورد کردم بیشتر پاسارگادها ضمن حفظ تماس با جلگه ایلام و شهر شوش در دژهای خود جداگانه زندگی می‌کردند آنها به زودی به رؤسای خود عنوان شاه آنشان دادند قبایل در شورای سیاسی سازمان یافتند که مسئول هماهنگ کردن روابط ایشان با ملل دیگر و اداره منافع عمومی توایف مختلف بود. در سال 700 پاسارگادها ها نجیبترین فرد خود به نام حخامنش را به پادشاهی آنشان برگزیدند. در کنار شاه شورای پدید آمد که مرکب از نخبگان نظامی، صاحبان املاک و اعضای خاندان او بود. برای تشکل ملت، گردآوردن و متحد کردن یک قبیله در سرزمینی معین و اعلام پادشاهی کافی نبود. دوستان وفادار هخامنش اگر می‌خواستند با تمام نیروی بلند خود وارد تاریخ شوند، نخست باید اعمال برجسته و نمونه‌ای انجام می‌دادند. حرکتی افتخارآمیز و قهرمانانه که شایستگی عنوان بنیانگذاران قلمرو سلطنتی را در چشم خودشان به آنها بدهد. در سال 681 قدرت آشور رقیبی نداشت و شاهی که بر نینوا حکومت می کرد سنخاری به ستمگر با وجود چند شکستی که خورده بود ارباب بیچون و چرای شرق محسوب می شد. شاید هخامنش این را میفهمید فهمید که برای ایجاد ملتی آزاد یا باید با قوی ترین شاهان زمانه به مخالفت برخیزد یا دست کم به کسانی ملحق شود که اقتدار نینوا را به مبارزه طلبیده بودند. یا شاید فقط فکر می‌کرد که برای تحکیم و آبدیده کردن روح ملت تازه متولد شده لازم است با قدرتی بیگانه بجنگد. وقتی سنخاریب تصمیم گرفت یک بار دیگر ایالت بابل این تقیانگر ابدی را مجازات کند، سر راه خود با اعتلافی از نیروهای بابلی و ایلامی روبرو شد که تمام دست نشاندگان و متحدان خود از جمله ها را به میدان آورده بودند. دشمنان سنخاریب چنان بوه بودند که حرکت آنها را به حجوم ملخها تشبیه کردند. نبرد در سواحل دجله در حلول صورت گرفت. بیکارها نخوز مبهم و همراه با تردید بود و اقوام شورشی این تردید را ناکامی قدرت نینوا تعبیر می کردند. با این حال سنخاریب که از گویی ابایی نداشت در لاف زدن به نیروی شمشیر خود تردید نکرد. گردن آنها را چون آهو قعد کردم، حلقوم آنها را مانند ریسمانی بریدم، گلو و دل و روده آنها را مانند گیاهانی که از باران رویده باشند بر سطح زمین جاری ساختم. پای اسبان سواران و اسبان عرابه من در خون آنها مانند نهری قرق شد. پیروزی سرانجام از آن شاه نینوا شد که شهر بزرگ کلدانی را اشغال و ویران کرد. سپس سنخاریب چنان که گویی میخواهد حسابی قدیمی را تصویه کند به سوی ایلام رفت و آنجا را اشغال کرد. اما انقیاد ایلام به معنای شکست پاسارگادها نبود که به پناهگاه مرسوم خود یعنی کوههای آنشان پناه برده بودند. سنخاریب در قید آن نبود که برای فرونشاندن نشاندن اتش انتقام خود از قبایلی که به نظر او اهمیت چندانی نداشتند به آنها حمله ور شود. اکنون دوستان حقامنش به رقم شکست خود می توانستند امیدوار باشند که روزی نقشی بین المللی ایفا خواهند کرد. شاه آنشان که با حاکم نینوا جنگیده بود شایستگی آن را یافته بود که نام خود را سر سلسله جانشینان خیش قرار دهد و چنین بود که دودمان حقامنشی پدید آمد. مهاجرت های آریایان سفر تیرهای آریایی در هزاره سوم پیش از میلاد آغاز شده بود. در آن زمان هجوم فقلافه مهاجران بر جماعات ساکن قفقاز و استقحال آسیایی واقع در میان دریای خزر و دریاچه آرال تأثیر گذاشت و امواج مردان، زنان و ها به سوی غرب، جنوب و شرق به حرکت درآمدند. کسانی که به سوی غرب رفتند منطقه را کشف کردند که روزی نام الهه یونانی ایروپ دختر مینوس آن نهاده شد و بعدها به تدریج تبدیل به گاهواره تمدنی بی همتا در تاریخ بشریت کردید. دیگران به سوی خاور و جنوب خاوری حرکت کردند. در کنار دریای خزر دو قسمت شدند. دریاچه اوکین یا آرال را دور زدند، از کوه های باکتریا و رود سند گذشتند و به شبه جزیره پهناوری رسیدند که امروز هندوستان نام دارد. گروه دیگر سرانجام دریای خزر را دور زدند این آریاییان نیز به دو دسته تقسیم شدند عدهای ساحل غربی دریای خزر را پشت سر گذاشتند و به سوی آسیای صغیر های ارمنستان و سپس به کشور هیتی‌ها رفتند عده دیگر به راه خود در کرانه دریای خزر ادامه دادند، سپس به جنوب رفتند و پادشاهی مادها را به وجود آوردند و قرنها بعد مرکز اکباتان یا حمدان را بنا کردند که به معنای محل گرد آمدن است. کسانی که حرکت در ساحل شرقی را ادامه دادند، با عبور از هیرکانی یا گرگان در شرق فلات ایران استقرار یافتند. این تیره ها خود را در نوعی دام جغرافیایی اسیر دیدند، این سرزمین پهناور که میان دو فرو رفتگی، دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب واقع شده است، به دماغه مرتفعی به شکل یک مسلس بسته در میان کوهای بزرگ شباهت دارد. در غرب، کوهای زاگروز در گسترهی بیش از هزار کیلومتر و پهنای دویست کیلومتری قرار گرفته است. در شمال رشته کوه های البرز که ارتفاع قله اصلی آن از 5600 متر بیشتر است و در شرق با کوه های خراسان ادامه می یابد. بدین ترتیب فلات ایران به دژ بلندی میمانست که با کوه های صعب العبور احاطه شده و از بقیه جهان جدا مانده است. با وجود این یک برآمدگی در کوه های زاگرس شکاف ایجاد کرده بود که به جلگه بینان نهرین راه داشت. این گذرگاه در تیه قرنها راه عبوری بود که حمله‌ها از آنجا انجام می‌گرفت و به آریایی‌ها امکان داد در رها و های ایران را تسخیر کنند. با این حال در این محل‌ها چه در داخل فلات و چه خارج آن زندگی به دشواری سازمان می‌یافت. به ویژه در اطراف جلگه ایلام که پاسارگادها در آن مستقر شدند. تازه از راه رسیدگان در این محیط ناخوشایند به ناچار نیم نگاهی از دماغه مرتفع کشور آنشان به سوی جلگه ثروتمند و غنی بین النهرین داشتند. تمام این جماعات آریایی تبار بین پایان هزاره سوم و هزاره اول با امواج متعدد از راه رسیده بودند. آنها در مناطقی با منابع متفاوت استقرار یافتند، مردمان دیگری را به دنبال خویش کشیدند و اختلاطی از قبایل تشکیل دادند که شیوه زندگی و اعتقادات مشابهی داشتند. اما به زودی منافع سیاسی آنها با هم در تضاد قرار گرفت. آخرین از راه رسیدگان آنهایی که در آغاز قرن نهم در منطقه مستقر شدند، برعکس آریایی های اولیه با مقاومت گاه خشونت جماعتی مواجه شدند که زودتر در جلگه ها و کوه ها اسکان یافته بودند. این امر در مورد مادها صادق بود که در اطراف پایتخت خود اکباتان سرزمین وسیعی را اشغال کردند که تا شرق دماوند و هاشیه کویر مرکزی ایران امتداد میافد. همچنین مجموعه ای از قبایل از جمله پاسارگادها پس از اقامت در اورارتو نزدیک دریاچه ارومیه در منطقه‌ای به نام پارسوآ بالاخره در قسمت جنوبی تر پارسوماش و آنشان استقرار یافتند. از جمله آخرین از راه رسیدگان در شرق آسیایی سکاها و کیمریها بودند که هواشی شمالی آشور را در مرزهای قلمرو اورارتو اشغال کردند. اشغالگرانی که از قفقاز پایین آمده بودند، فقط در جستجوی محل اسکان برای خانواده ها و چراگاه برای دامهای خود نبودند، آنها جویای ثروت نیز بودند. بنابراین، از شمال دریاچه ارومیه بین دریای خزر و دریاچه وان به حملاتی با امواج متوالی پرداختند. قلمروهای کوچک اطراف سعی کردند در مقابل این حملات مقاومت کنند دولت آشور نیز به جنگی شدید علیه آنها دست زد البته به طور ادواری دوره های قطع جنگ و حتی همکاری میان نینوا و مهاجران آریایی پیش می آمد. اما آشوری ها در برابر قبایلی چنین سرکش و دست نیافتنی دچار زحمت بسیار می شدند و نمی توانستند سیاست منسجمی داشته باشند سکاها مردمان چادرنشینی بودند که قبایل گوناگون آنها ناحیه گسترده‌ای از دریاچه آرال تا جریان فوقانی رود دانوب را اشغال کرده بودند. خوراک اصلی آنها شیر مادیان بود و خانه‌هایشان روی گاری‌های متحرک قرار داشت. آنها سوارکارانی ماهر بودند، شلوار می پوشیدند و در استفاده از کمان و شمشیر مهارت داشتند، پوست سر دشمنان خود را می کندند، از جمجمه آنها کاسه می ساختند و در درون آن خون دشمنان را می نوشیدند. خدای جنگ را می پرستیدند و به آتش احترام می گذاشتند، اما آین مذهبی خاصی انجام نمی دادند، نمعبد داشتند و نه تصویری از خدایان قیش، آشوریان آنها را قومی زنگونه میپنداشتند چون جادوگرانشان لباس زنان را میپوشیدند و با صدای نازک سخن میگفتند اما ارمیای نبی تأکید دارد امتی که زوراورند و امتی که قدیمند و امتی که زبان ایشان را نمیدانی و گفتار ایشان را نمیفهمی ترکش ایشان قبر گشاده است و جمیع ایشان جبارند در مورد کیمری ها باید گفت که مشهور بود آنها در هاشی زمین زندگی می کنند، جایی که خورشید نمی درخشد. همر در اودیسه آنها را ساکنان منتعاله اروپا می داند که در تاریکی غرق شده است. در واقع آنها که خواستگاهشان اورال بود، در آغاز هزاره اول به ویژه در تراکیه گرد آمدند و از آنجا ارتباطاتی با سکاها برقرار کردند. مات‌ها متفاوت با سکاها و کیمریها سرزمین‌های استراتژیکی را اشغال کردند و در جستجوی وسایلی برآمدند تا با مردم اطراف خود ادغام شوند. آنها می‌خواستند خصوص در چشم همسایه قدرتمند خود آشور نیروی واقعی تدارک ببینند که از لحاظ سیاسی در اطراف پایتخت سازمان یافته است. پاسارگادها به مناطقی علاقه داشتند که راه آنها را به سوی غرب صد می کرد. کلده و آشور کشورهای آسیایی صغیر مجموعه و بلوکی فرهنگی تشکیل داده بودند که رخنه در آن برای پاسارگادها دشوار مینمود پاسارگادها در صحنه شطرنج منطقه دست نشانندگان ماتها به حساب میآمدند به نظر نینوا در میان جماعات مستقر در شرق امپراتوری فقط ماتها میتوانستند خطرآفرین باشند البته سنخاریب همیشه آنها را چادرنشینانی ساده، فتنجو و گاه مزاحم می‌دانست، اما هرگز قدرتی سازمان یافته تلقی نمی‌کرد. در زمان اصرحدون، شاه ماد فرورتیش ائتلافی از قبایل سکاها، کیمری و پارسیجاد ایجاد کرد که باعث شد آشوری ها ماد را از لحاظ سیاسی به رسمیت بشناسند. برای نخستین بار آریاییان موفق شده بودند یک دولت شایسته این نام تشکیل دهند این البته مانع آن نشد که ارتش نینوا به حملات مداوم علیه سرزمین ماد بپردازد و جنگجویان آشوری که میخواستند برای خود اسب تهیه کنند پیوسته به ماد حمله و اسب دزدی میکردند و به این ترتیب حاکمیت ماد را مورد تجاوز قرار میدادند. در سال 635 فرورتیش تصمیم به واکنش گرفت و بر آن شد تا اعتلاف جدیدی تشکیل دهد اما سکاها حاضر به این ائتلاف نشدند چون یکی از رؤسای آنها با یک شاه دخت آشوری ازدواج کرده بود آشوربانیپال پال که جانشین پدرش اصرحدون شده بود به ماد حمله برد و چند پاسگاه بزرگ مرزی را تصرف کرد سپس نبردی قطعی در دشت راقه یا ری رخ داد این نبرد بسیار شدید و بی امان بود. بارانی از نیزه و زوبین فرورتیش را از پای درآورد. چند روز بعد اکباتان نیز تسخیر شد. پیروزی آنقدر کامل بود که شاه آشور وقتی به نینوا بازگشت تا چهار ماه با کسانی که در این کشی او را همراهی کرده بودند بسیار خوشرفتار بود. به نظر می رسید رؤیای فدرالیستی پادشاه ماد بر باد رفته است. سکاها با استفاده از این فرصت و شکست سخت مادها در ماد مستقر شدند. آنها بیست سال در آنجا باقی ماندند، اما پارسها ها نیز پیوسته منتظر فرصتی بودند تا استقلال خود را به دست آورند. مردی که در این زمان در آنشان حکومت می‌کرد چیش پیش پسر حقامنش بود، شاه جوان که جانشین مستقیم بنیادگذار سلسله بود به محض جلوس بر تخت مملکتی کوچک و دست نشانده درگیر رویدادهایی شد که در واقع به نفع او بود. شورش مادها علیه آشوریان به آن معنا بود که ملتی آریایی تبار که در میان کوههای خشن محصور شده بود می توانست با ساکنان قدرتمند و ثروتمند دشتها رقابت کند. شگفت این بود که شکست فرورتیش همین احساس را در پارسها تقویت کرد. درست است که مادها مقلوب شده بودند، اما علت این شکست خیانت یک ملت آریایی تبار دیگر یعنی سکاها بود. این امر به هر حال باعث شد دست نشاندگی پارس ها نسبت به مادها تا حد زیادی کاهش یابد. اکنون برگ برنده سیاسی نظامی تازه‌ای در اختیار آنها قرار گرفته بود. چیش پیش به هر صورت توانست از موقعیت استفاده کند او با تسلط بر پارسوماش و آنشان با علاقه به پارس که در آن زمان فقط بخشی از آن را در اشغال داشت مینگریست. این منطقه که در جنوب غربی سرزمین پاسارگادها گسترده شده بود به ویژه پس از شکست مات ها از آشور بانی پال و تصرف شوش ارزش استراتژیکی مهمی پیدا کرده بود اکنون مادها مغلوب و ایلامیان در حال افول تاریخی بودند و چیش میتوانست می توانست امیدوار باشد که نقش سیاسی مهمی می ایفا خواهد کرد و سوارانش به زودی تمام پارس را تصرف کردند. از این پس اقتدار چیش پیش بر شرق و شمال شرقی منطقه آشور بابل و بر فلات ایران گسترش یافته بود. پس لازم بود از ایجاد نگرانی در قدرت‌های همسایه بپرهیزد و در عین حال قدرت نیرومندی را بنمایاند که وارد بازی پیچیده اتحادها و برهم خوردن آنها شده است. حقامنشیان به برکت سیاستی ماهرانه موفق شده بودند قلمرو خود را وسعت بخشند و اکنون باید خود را محتاط نشان می‌دادند. رویاهای زوبی نفکن از سرحدون آشوری حق جانشینی خیش را به پسر مورد علاقش آشوربانیپال پال داده بود و پسر دیگرش شمشوم اوکین که حاکمیت ایالت بابل به او سپرده شده بود هوس توقیان علیه برادر را در سر می پرورانید شمششوم اوکین برای انجام بهتر تصمیم خیش نیاز به متحدانی داشت بنابراین این مخفیانه با پارس ها تماس گرفت که هم موقعیت استراتژیکی خوبی داشتند و هم به اندازه کافی در هنر جنگ ماهر بودند اما چیش پیش که خطر اقدام علیه آشوربانی پال را به فراست دریافته بود ترجیح داد فرستادگان والی بابل را دست به سر و بیطرفی خود را حفظ کند چون قلمرو او نیاز به تقویت شاه داشت و خیلی نوپا و زود شکن بود در سال 648 وقتی برادر شورشی جان خود را در پی شکست از دست داد شاه آنشان به جهت حفظ بیطرفی و احتیاط در مقابل قدرت بزرگ آشور به خود تبریک گفت. پارسها به تدریج وضع استوارتری میافتند. آیا چیش پیش هنگام مرگ دچار اشتباه شد که پادشاهی خود را میان دو پسرش آریا رمنه پسر کوچکتر و کوروش پسر بزرگتر تقسیم کرد؟ او پسر کوچکترش آریا رمن را بیشتر دوست داشت و به او عنوان شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشور پارس را داد حالانکه که کوروش فقط شاه پارسوماش بود در سال 640 کمی بیش از نیم قرن پس از تأسیس سلسله حقامنشی دو قلم متمایز به سنت کاملا جدید عرفی پارس ها ادامه میدهند. کوروش پدر بزرگ مؤسس شاهنشاهی حخامنشی، به رغم ارشد بودن، دورترین ایالت مرکز تمدن را به ایرس برده بود و آریا رمنه، پدر بزرگ داریوش آینده که ادامه دهنده راه کوروش بزرگ خواهد بود، منطقهی را به ایرس برد که او را در تماس با مادها و آشوریها قرار میداد. آیا کوروش یکم به این دورماندگی راضی بود؟ آیا به برادرش اجازه میداد تنظیم روابط بینالمللی پارس‌ها را بر عهده بگیرد آیا زمان آن فرا نرسیده بود که شاه پارسوماش اهمیت استراتژیکی منطقی را که بر آن حکومت میکرد در های شرقی مجموعه آشور بابل به اثبات برساند کورش یکم با نشانهای از سربراهی و احتیاط حکومت خود را آغاز کرد در همان سال 640 پس از شکست فاجعه بار ایلامیان در برابر آشور بانیپال، وسعت امپراتوری آشور، قدرت، سازمان، رشد فرهنگی و محبوبیت اعتقادات آن مورد ارزیابی کروش یکم قرار گرفت که به تازگی وارث قلمرو همسایه ایلام شده بود و چاره ای نمی دید جز آنکه به آشور بانیپال وفادار بماند. در آن زمان، سوگند وفاداری برای جلب اعتماد کافی نبود. و بنا رسم معمول در شرق کوروش یکم پسر ارشد خود آروکو را به گروگانی نزد شاه آشور فرستاد پس شاهزاده جوان راه نینوا را در پیش گرفت تا سالها در آنجا بماند و سیاست محتاطانی پدرش آشوربانی پال را به مدارا وادارد اما مادها که همچنان تحت تسلط سکاها قرار داشتند آگاه به ناتوانی خود ترجیح دادند آرام بمانند با وجود این وقشتره شاه آنها که به تبر اولین وظیفه او رهایی از یوغ سکاها بود نه از جاه خالی بود نه از تمایل به عمل مرگ آشوربانیپال پال در 630 و جانشینی شاهانی ضعیف و بی بی‌تصمیم بیگمان میل به استقلال را در مادها تقویت کرده بود در 625 قتل عام رهبران سکاها در یک شب میخارگی و بدمستی به هوخشت را امکان داد به بررسی جدی طرح فدرالیستی بزرگ خود بپردازد پردازد که محور اصلی آن شورش علیه آشور بود. جانشینان آشور با نیپال امکان و اراده متحد شدن با پارس های آریا رمنه و کوروش یکم را نداشتند تا موازنهای در برابر قدرت روبه فزونی مادها پدید آورند. رهبران پارس در مقابل نبردی که میان نینوا از یک سو و سپاهیان بابل و اعتلاف سکاها و مادها از سوی دیگر در گرفته بود تا حدی در تنگنا قرار داشتند. رویدادهای سال 612 و فروپاشی امپراتوری آشور آنها را در وضعیت عجیبی قرار داد. آنها از لحاظ نظری دست نشانده مادها متحد بلغوه آشور و همسایگان سایگان عبوس بابل بودند و نمی توانستند امیدوار باشند که از وضع سیاسی جدیدی که هیچ سهمی در آن نداشتند سودی آیدشان شود. با وجود این رستگاری آنها در ماد بود که به مسابه امپراتوری جدیدی پس از سقوط نینوا در اوج قدرت خود به سر می برد و هوق نظر خوشی نسبت به تقسیم پارس به دو قلم سلطنتی متمایز نداشت. چگونه میتوانست بپذیرد که امپراتوری بزرگ جدیدش با تقسیم ملت کوچک پارس هماهنگ باشد او جویای وحدت بخشیدن به قبایل آریایی بود کمی قبل از پیروزی مادها و بابلیان بر آشور و همزمان با سلطنت کورش یکم در پارس و ماش آریارمنه تخت خود را به پسرش آرشام واگذار کرد در سال 600 پادشاه ماد تصمیم گرفت دو قلمرو جداگانه پارس را تحت اقتدار پسر کوروش یکم، کمبوجیه‌ای جوان و جاهطلب درآورد و متحد سازد. در حالی که مادها به بقایای امپراتوری آشور علاقه ای نداشتند و در حالی که نبوکدنصر جز در فکر تحکیم قدرت خود در بابل نبود، پارسها وارد مرحله جدیدی از اوج تاریخی خود شدند. اکنون مادها رفته رفته ضعیف می و ووقشت را پیر شده بود. او نزدیک به نیم قرن سلطنت کرده و در آستانه آن بود که تاج و تخت را به پسرش آستیاک که نامش به معنای نیزافکن بود واگذارد. بدون آنکه به راستی وسایل سیاسی خروج قطعی از شرایط هااشیه نشینی را به مادها داده باشد. مادها با تمدن های اطراف خود بیگانه مانده بودند. پارسیان تحت حکومت کمبوجیه رفته رفته از اینکه دست نشانده مادها باشند احساس خستگی می کردند. جهان در برابر چشمان آنها به تدریج عوض می شد، سازمان می یافت و عجیب بود که مغلوب کنندگان آشور و برادران نژادی آنها نمی توانستند، از این موقعیت دور از انتظار درس بیاموزند. از آن زمان سیاست کمبوجیه گرچه ممکن است برای سال 600 زیاده از حد بلند پروازانه بنماید این شد که جانشین مادها شود و قانون خود را بر سراسر آسیا تحمیل کند. آستیاگ ناخواسته راه این نقشه را هموار کرد. سرور جدید مادها قبل از هر چیز مایل بود از ثروت عظیمی که پدرش برای او گذاشته بود لذت ببرد. این زوبین انداز به نام خود رفتاری متزاد با افراد جنگ جو داشت. شکوه، جلال و تجمل بر دربار آستیاگ حک فرما بود. آستیاگ جامعه بسیار فاخر می پوشید، چشمانش را سرمه میکشید، کشید، چهرهش را آرایش میکرد و گیسوانی مصنوعی به سر می نهاد. مادها نیز به زندگی در رخوت و سستی و ناز و نعمت خو گرفته جامعه ارقوانی میپوشیدند و گردنبند و دستبند آویزان می کردند. این ملت جنگجو و شکارچی که ار جنگی خود را کنار گذاشته و سوار کالسکه میشدند به شکار در بوستانها و نواحی حراست شده میپرداختند. این ملت در واقع تصویری از خود آستیایی بود تجمل انسان را ترسو میکند و شاه ماد از این قاعده مستثنا نبود. او فردی خودپسند، خرافاتی و خشن بود که حتی از سایه خود نیز میترسید. دخترش ماندانه میتوانست نوادگان مشروع او را به جهان آورد در حالی که به چشم او خطری برای تاج و تخت محسوب میشد. بنابرای روایتی که مورخان یونانی نقل کرده اند، او خواب دید که از شکم ماندانه درختی رویید که آسیا و سراسر جهان را دربر گرفت. این خواب او را ترساند. او با متخصص افراد قبیله مغان که کاست حقیقی روحانی دربار بودند و مادهای دیگر بسیار به آنها حسد میورزیدند و حتی از آنها نفرت داشتند به مشورت پرداخت. مقهای خوابگزار شاه را برانگیختند که با ازدواج ماندانه با فردی بزرگ مخالفت کند شاه ماد تصمیم گرفت دختر خود را نه به یک ماد از رده شاهزادگان بلکه به یک دست نشانده که دور از اکباتان به سر می برد یعنی به کمبوجیه که به لطف و نامدار شاه پارس شده بود و آستیاگ او را بسیار پایینتر از رده متوسط مادها میدانست شوهر دهد از نظر کمبوچی این وصلت بدترین چیزی که ممکن بود برای آرام کردن نگرانی‌های یک شاه ضعیف و جاهل پیشاید نبود بلکه راه قدرت را هموار می‌کرد اما شاه بیخبر از خواب دیدن دست نمی‌کشید در خواب جدیدی دید که از شکم دخترش شاخه تاکی رویید و سراسر آسیا را در بر گرفت و ماندانه اتفاقاً باردار بود بنابرای سفارش مقان، شاه ماد بیدرنگ دخترش را به دربار اکباتان فراخواند. نوزاد به دنیا آمد. نام او را مانند پدر بزرگش کوراس نهادند که تلفظ پارسی باستان آن بود. یونانی ها بعدها به او کوروس و ابریان کوروش می گفتند که در زبانهای لاتینی سیروز خانده می شد. کودکی که شاه بازی می کند ایرودوت که یک قرن پس از تولد کورش سراسر خاور نزدیک آسیایی را زیر پا گذاشت و قصد داشت تاریخ عظمت پارس‌ها را برای نسل‌های آینده بازسازی کند به گردآوری همه اطلاعات در دسترس درباره زندگی بنیانگذار شاهنشاهی ایران پرداخت او که در حالی شهر یونانی آسیایی صغیر زاده شده بود، با پیروی از دقت و سهت تاریخی، آنچه از رویدادهای تاریخی یا افسانهای و به ویژه اوزای استورهی تولد کورو شنیده بود، نقل کرد. آستیاگ بر آن شد که پسر دخترش را، پسری که قرار بود در آینده شاه شود و قدرت او را به خطر اندازد، از بین ببرد. در میان نزدیکان وفادارش سردار جوانی به نام هارپاگ بود که شایسته فرد برای اجرای این معموریت مهم سیاسی به نظر می رسید یعنی کشتن این کودک خطرناک هارپاگ به فرمان سرور خود کودک را از ماندانه گرفت و به خانه خود برد در حالی که می گریست فرمان شاه را به زن خود اطلاع داد مرد مورد اعتماد آستیاک علاوه بر نفرتی که از این معموریت داشت میدانست که اجرای فرمان شاه خطرناک نیز هست. او میدانست که اگر پادشاه ماد بمیرد ماندانه جانشین او خواهد شد و بیگمان به خاطر کشتن پسرش به او پاداش نخواهد داد. هارپاک تصمیم گرفت خود را به نحوی از شر طفل برهاند ولی خود او را نکشد. بنابراین چوپانی به نام مهرداد را معمور انجام این کار کرد. چوپان کودک را به خانه برد و مطلع شد که بنا تصادفی به راستی الهی همسرش که اسفاکو نام داشت فرزندی مرده به دنیا آورده است. زن پس از اطلاع از فرمان مرگبار شوهر تصمیم گرفت این کودک را جایگزین طفل خود کند. پس جسد کودک مرده را در سبدی گذاشتند و به کوهستان بردند. چوپان نزد هارپاگ رفت و بیهراس به او خبر داد که مأموریت انجام شده است. ده سال گذشت. کوروش جوان که شخصیت استواری یافته بود در بازی کودکانه به پادشاهی بچه‌ها انتخاب شد. او نقش خود را جدی گرفت و وظایف اطباء خود را تعیین کرد. قرار بود عده‌ای برای او کاخ بسازند، عده‌ای نگهبان او باشند، یکی باید چشم شاه میشد تا در واقع فرد مورد اعتماد شاه باشد، دیگری رئیس قاصدان و غیره. اما یکی از آنها، پسر آرتنبار که از بلند پایگان ماد بود، از فرمان کوروش سرپیچید. شاه او را به جرم عدم اطاعت گرفت و چند تازیانه به او زد. کودک که از این رفتار آن هم از سوی پسر یک شبان خشمگین شده بود، نزد پدر رفت و گفت، نگاه کن که پسر یک چوپان چه رفتاری با من کرده است؟ آرتنبار به خشم آمد و با پسرش نزد آستیاگ رفت و در حالی که شانه های پسرش را نشان می داد گفت، شاها، ببین که یکی از غلامزادگان تو پسر یک شبان جرأت کرده است با پسر من چه کند؟ آستیاگ سخنان او را شنید، به جای تازیانها نگاه کرد و برای خوشایند آرتنبار تصمیم گرفت انتقام فرزندش را بگیرد. دستور داد شبان را همراه با پسرش احزار کنند. به کوروش گفت ای غلام زاده آیا تو نسبت به فرزند ممتازترین ترین مقربانم چنین این رفتاری کرده ای؟ کوروش پاسخ داد علا حضرت آنچه درباره او کردم به هیچ روی کار خلافی نبود. ما کودکان ده مشغول بازی بودیم، او هم یکی از ما بود. آنها مرا به شاهی برگزیدند چون برای احراز آن مقام سزاوارترم پنداشتند. همگی به فرمانم سر نهادند، فقط او نافرمانی کرد و به دستوراتم اعتنایی نداشت. بنابراین به سزای کردار خود رسید. اگر باید مجازات شوم، همین آن آماده فرمان پادشاهم. به گفته هرودوت، شاه ماد با توجه به خانواده این کودک و نیروی شخصیت و منطق گفتار او به فراست دریافت که این باید پسر ماندانه باشد. هارپاک را اهزار کرد و اونی صادقانه و بازیرکی به جرم خود اقرار کرد. سرورا، وقتی نوزاد را همراه بردم، بسیار اندیشیدم که چگونه فرمان شاهی را به نحو احسن اجرا کنم بدون اینکه نسبت به سرورم کاری ناروا مرتکب شده باشم. به عبارت دیگر احتراز داشتم فرزند دخترت و نوادعت به دست من تلف شود از این رو چوپان را وسیله انجام منظور قرار دادم و نوزاد را به او سپردم تأکید تمام کردم که دستور اعدام را خود پادشاه صادر فرمودند و این عین حقیقت است زیرا که فرمان شاهی بود به علاوه به او تعلیمات لازم را دادم و سفارش کردم طفل را در محلی دور افتاده در میان کوه بگذارد و آنقدر زیر نظر داشته باشد تا جان دهد و در صورت نافرمانی همه قسم تهدید و اختار را به او گوش زد کردم او نیز دستور مرا اجرا کرد همین که بچه مرد گماشتگانم را فرستادم تا از جسد طفل بازدید کنند و آن را به خاک سپارند اعلی حضرت ها این تمام حقیقت است و نوزاد بدین منوال از بین رفته است. آستیاگ خشم خود را پنهان داشت و وانمود کرد که او را بخشیده است. حتی برای صرف شام او را به قصر خود دعوت کرد. اما بنابرای روایت هرودوت دستور داد پسر هارپاگ را بکشند و آن شب کباب و خورشی از گوشت پسر به خرد پدر بدبخت داد و بدین ترتیب هارپاگ را مجازات کرد. آنگاه آستیاگ مسئله کوروش را به نحو دیگری حل کرد. او مقانی را که قبلا پیشگویی کرده بودند، فرزند ماندان شاه مات خواهد شد به دربار احضار کرد. مقان پس از مشورت فراوان پیشگویی خود را دوباره تایید کردند. لازم بود کودک بمیرد وگرنه به سلطنت میرسید. آنگاه آستیاگ در نهایت شگفتی مخاطبان لبخند زنان به مقان گفت که پیشگویی آنها تحقق یافته است. کوروش پادشاه شده و نقش شاه را برای کودکانی که او را به شاهی برگزیده بودند ایفا کرده است. مقان که از این ماجرا خوشحال شده بودند گفتند که شاه ماد دیگر نباید حراسی داشته باشد. خواب او به حقیقت پیوسته و کودک سلطنت کرده است. آنها افزودند که اگر خطر دیگری وجود داشت شاه را آگاه می کردند ولی گاه یوقات هر خواب تعبیر ساده و بی اهمیتی دارد. بنابر این شاه کوروش را نزد پدر و مادرش به پارس فرستاد. در راه بازگشت نگهبانان ماجرا را برای کوروش باز گفتند که پدربزرگش فرمان قتل او را داده بود تا مبادا روزی یک پارسی بتواند شاه ماد شود و مادها در کشور خود بیگانه باشند. وقتی کوروش نزد کمبوجیه و ماندانه رسید تعریف کرد که چگونه زن شبان اسفاکو او را پرورش داده است. از آن بانو بسیار ستایش کرد و در هنگام بیان سرگذشت خیش پیوسته نام اسفاکو ورد زبانش بود. این اسم که به معنی ماده سگ است بی اندازه در نظر والدین او عجیب آمد. از این جهت و به خاطر وضع اجازامیز نجات کوروش، افثانهی در میان پارسیان پیدا شد و شایع ساختند که سگ مادهی نوزاد را در کوهستان پیدا کرده و شیر داده است. قهرمان جوان کسی که قرار بود روزگاری وحدت بخش شرق شود نه فقط الهام بخش بیشتر مورخان یونانی شد بلکه موضوع مورد علاقه مورخانی قرار گرفت که به امر مورد پسند یونانیان یعنی تعلیم و تربیت اهمیت میدادند مثلا گزنوفون در داستانی تاریخی که به نقل سرگذشت کوروش جوان میپردازد به امر تعلیم و تربیت اشاره کرده است هدف از کتاب سیرت کورش کبیر یا کورش نامه نوشته ی گزنوفون نشان دادن سرمشقی برای پرورش کودکان و بالغان یونانی است و بر تاریخ نمادین شاهزاده جوانی تاکید می کند که منش و هوش او سرمشق ملل متعدد شده است اما شاید کوروشنامه بیان اصولی است که یونانیان در آغاز قرن چهارم پیش از میلاد آن را باور داشتند و از اطلاعات تاریخی مناطق دیگر به دست می آوردند. در هر صورت گزنوفون به سنت و سرودهایی اشاره می کند که امروز هنوز میان بربرها وجود دارد تا به این ترتیب به توصیف صورت ظاهر و خصوصیات اخلاقی کوروش بپردازد. کوروش چهرهی بسیار زیبا داشت. روح او سرشار از انسانیت بود و به دانش عشق می ورزید. چنان شیفته شرف و افتخار بود که همه گونه خطر را می پذیرفت تا شایسته ستایش شود. اینها صفات اخلاقی و جسمانی کوروش بودند که امروزه در میان ایرانیان سنت شده است. گزنوفون درباره آموزش اخلاقی قهرمان خود داستانهایی نقل می‌کند که با آنچه بتوان درباره آموزش درست تصور کرد، آن هم 2500 سال پیش، مطابقت دارد. کوروش برای مادرش حکایت می‌کند که چگونه آموخته است ادالت عبارت از تطابق قضاوت با قانون است و تفاوت میان آنچه عادلانه و آنچه منصفانه است، به او نشان می‌دهد. استاد من که تصور می کرد عدالت ادالت را دریافتم، مرا قاضی رفقایم کرد با این حال روزی پیش آمد که من به علت قضاوت غلط در یک اختلاف تازیانه خوردم کودک بزرگی که ردای کوتاه تن داشت کودک کوچکتری را که ردای بلند داشت برهنه کرد ردای خود را بر او پوشانده و خود ردای او را پوشیده بود من که به عنوان قاضی مشاجره پیش آمده بودم به این نتیجه رسیدم که ردایی برای هر یک از آنها مناسب است که اندازه قدشان باشد. درست به این دلیل بود که استادم مرا تنبیه کرد و تازیانه زد. او به من گفت اگر قرار بود درباره تناسب قضاوت می کردم باید چون این قضاوتی می نمودم. حالا که باید داوری می کردم ردا به چه کسی تعلق دارد، مالک حقیقی آن کیست و چه کسی آن را به زور گرفته یا آن را خریداری کرده است؟ آنگاه افزود که آنچه با قوانین مطابقت داشته باشد عادلانه است و هرچه چنین نباشد تجاوز محسوب می شود. فضیلت اولیه ای که استادان میخواستند به کرش بیاموزند مربوط میشد به شجاعت نظامی و سازماندهی سپاه. اگر انسان وسایل تحقق تصمیمات عادلانه را نداشته باشد دانستن قضاوت به کارش نمیآید. برای تحکیم و تقویت یک نهاد اجتماعی مانند ارتش وجود دو عامل اساسی است انسجام درونی بدنی ارتش همبستگی که انسانها را به یکدیگر پیوند دهد از یک سو و اراده به پیروزی که به رقم نتیجه نبرد رابطه نزدیکی با میل به زنده ماندن دارد از سوی دیگر اطاعتی که یک فرمانده از افرادش انتظار دارد بستگی به آن دارد که نیز امنیت آنها را تضمین کند کمبوجیه به پسرش گروش می گفت چیز دیگری که تو باید بدانی آن است که تمام کسانی که می خواهی از تو اطاعت کنند به نوبه خود انتظار دارند مراقب امنیت آنها باشی با آنکه سلسله مراتب لازم است افراد باید بدانند که ارزشی برابر دارند و فقط شایستگی و شجاعت است که در سازمان ارتش باید مورد ملاحظه قرار گیرد. آیا کوروش سپاهیان فئودالی مادها را به گردانهای دموکراتیک و مردمی تبدیل خواهد کرد؟ کوروش در زمان حیات پدرش، هنگامی که هنوز جوان بود، بنا سنت بسیار کهن پارس‌ها مسئولیت فرماندهی سپاه را بر عهده گرفت. او بدین ترتیب می‌تواند آموخته‌های خود را درباره سازمان نظامی و بویژه سلاح جنگجویان با محک تجربه بیازماید. کوروش خطاب به قبایل پارسی که به تازگی در راه هدف پادشاه آنشان با آنها متحد شده بود، خطابه ای ایراد کرد که گزنوفون آن را با عنوان سخنرانی یک شاهزاده جوان در کتاب نامه نقل کرده است. آن، ای پارسیان، دوستان من، که در همان سرزمینی زاده شده و پرورش یافته اید که وطن من است، شما همان قدرت جسمانی را دارید که ما داریم و باید در شجاعت نیز چون ما باشید و شکی هم ندارم که چنین است. با وجود این در وطن خود از حقوقی که ما داشته ایم محروم بودید و این نه از آن جهت بود که ما باعث آن هرمان بودیم بلکه لزوم تلاش برای تأمین معاش چنین امکانی را از شما سلب کرده بود. از این پس با یاری خداوند بر برعهده من است که روزی شما را تأمین کنم اینک اگر طالب باشید همان تجهیزاتی را در بر خواهید کرد که ما داریم و مثل ما با خطر روبرو میشوید و از عزت و افتخار برخوردار و اگر چنین کنید سرفرازی نصیب شماست در گذشته شما نیز مثل ما زوبین انداختن و تیراندازی را آموخته اید و اگر در مهارت با ما یکسان نباشید عجبی نیست چون به اندازه ما فرصت تمرین نداشته اید، اما در لباس جدید دیگر تفاوتی بین ما نخواهد بود. هر یک از ما جوشنی که به اندازه سینه اوست خواهد پوشید، سپری در دست چپ و شمشیر یا ساتوری در دست راست خواهد گرفت و با این اسلحه ها به اتفاق دشمن را تارمار خواهیم کرد. تردیدی ندارم که به مقصود خیش خواهیم رسید، مایه تفاوت، فقط دلاوری است یعنی شجاعتی که دل و جان شما را هم مثل ما به حیجان آورد و بدانید که در زمینه کسب افتخار همه سهم برابر خواهیم داشت آن فتح و پیروزی را که اثراتی دلپذیر به ما ارزانی خواهد داشت چه کسی نصیب ما خواهد کرد؟ و چرا شما نباید در پیکاری که مزایا را از نابکاران باز میگیرد و نسار نیرومندان جان باز می, می حسی مساوی داشته باشید؟ شما همه سخنانم را شنیده اید. این اسلحه ماست. وقت آن است که داوطلبان از آن برگیرند و نام خود را نزد سردسته در همان ستونی بنویسند که نام ماست و اگر فردی هم ترجیح دهد در صف مزدوران بماند اختیار با خود اوست. و بار دیگران را خواهد کشید. کوروش در آغاز تجربه جنگی خود، حتی پیش از آن که به نخستین نبرد استراتژیک بپردازد پردازد، بیگمان در نظر داشت به همه کسانی که به او خدمت می کند، بختهای برابر بدهد، و با توافق آنها از امتیاز کسانی که فقط به دلیل اشرافزادگی به مراتب بالا رسیدند، بکاهد، اما چون این ارتشی به هر حال مرکب از مردانی بود که به دلیل شرایط خود انسانهایی به راستی حاکم بر سرنوشت خویش نبودند. این نظامیان به خوبی می دانستند که سرنوشت آنها در دست قدرتهای برتر و متعالی است، فرماندهان و رهبران باید مواظب می بودند که نشانه و تفعول را که خدایان می فرستادند، نادیده نگیرند و بدانند که خدایان هوادار پیروزی یا شکست چه کسانی هستند. کمبوجیه می اهمیت این عامل معنوی را که نتیجه نبرد به آن بستگی داشت به پسرش یادآور می شد. ری افزود اما پسرم درسی هست که به خصوص باید بیاموزی. چون اهمیت فراوان دارد از قربانی و توکل به خدا قافل مباش و هرگاه نتیجه قربانی را مساعد نیابی لشگریان خود و خیشتن را به خطر نینداز و بدان که مردم بنا بر حدس و توکل عمل می کنند. بدون اینکه یقین داشته باشند که بخت آنها و سرانجام کارها چیست؟ پس اقل آدمی زاد قادر نیست بهتر از بخت و تقدیر در کارها تأثیر کند و انسان اغلب از بازشناختن خیر و صلاح خیش آجز است. ولی ای فرزند، خدایان تا ابد پاینده اند و از گذشته و حال آینده آگاه و آنچه احتمال اتفاق و ظهور دارد میدانند. وقتی ما عناصر فانی از آنها استشاره میکنیم اگر به کسی نظر عنایت داشته باشند راه مینمایند و جای شگفتی نیست که آنها به همه آفریدگان عقل و هوش مساوی ندادند و الزامی هم ندارند نسبت به بندگانی که مورد اراده آنها نباشند اعتنا نمایند آموختن حرفه جنگاوری، بهترین تجربه برای اعمال قدرت پادشاهی تحت رابطه دوگانه رهبری انسانها و اطاعت از فرمان ایزدان بود. زندگی ریازتگونه و سخت کوشانه پارس ها شرایط زندگی دشوار آنها و پاکی و صفای اخلاقی آنها را در برابر فساد و تباهی آسیب کرده بود و این سخت گیری اخلاقی، یه گمان بهترین آموزگاری بود که کوروش پیش از شاه شدن میتوانست داشته باشد. شاه ایران فقط مسئول خوب کار کردن ارتش نیست بلکه در مورد سازمان اجتماعی نیز مسئولیت دارد. جنگاوران، روحانیان و مولدان ثروت کشاورزان، دامداران و پیشوران همگی باید در سعادت عمومی صحیم باشند. در دین کرد کتاب دینی ایرانیان که دانشنامه حقیقی تعلیمات دینی است، وظیفه شاه چنین توصیف شده است. رهایی انسانها از فقر، نگرانی، نیاز، بیماری، پریشانی و نابسامانی. در میان شاهان شایسته ترین ایشان کسی است که انسانهای کشور خود را از هر هرگونه دستی و بیماری ممکن که در اثر آن فقرا از نیازهای خود قافل میمانند. برهاند و هیچ بیماری نیست که درمانی برای آن وجود نداشته باشد اما فراتر از همه شاه وظیفه دارد با دروغ این آفت بزرگ روابط اجتماعی مبارزه کند قانونی بر همه شاه و رعایا حاکم است مبارزه شدید و شبانه روزی علیه قدرت دروغ در خیشتن و در تمام زندگی عدم انکار دین خود و عدم خطا در وظیفه خود داریوش یکم یکی از جانشینان کوروش برای یاداوری مشروعیت کردار خود پس از یاری خواهی از اهورا مزدا خدای پارس‌ها و آریایی در نیایش نهایی خود عشق هخامنشیان به راستی را چونین بیان می کند. باشد که در این کشور نه دشمن، نه خوشک سالی و نه دروغ بیاید. و باشد که اهورا مزدا این کشور را از شر دشمن، خوشک سالی و دروغ محفوظ بدارد کوروش از نوجوانی آین پرستش این خدای برتر را آموخت خدایی که متعالی بود اما یکتا نبود خدای این جهان که به اندازه کافی آزادمنش بود تا در کنار خیش وجود ایزدان کوچکتر را تحمل کند اهورا مزدا قبل از هر چیز است که چنان که آریا رمنا برادر کوروش یکم توصیف می کند پارس را به حقامنشیان اعطا کرده است این کشور پارس ها را که من دارندیان هستم، دارای عصب زیبا و انسان های نیک، خدای بزرگ اهورا مزدا به من اعطا کرده است. من شاه این کشور هستم. گوروش هنوز جوان بود که بدین گونه آموخت قدرت شاهی به اهورا مزدا بستگی دارد، البته نه به دلیل گزینشی خود سرانه، بلکه از آن رو که این خدا سرور نظام جهان کمی از قدرت خود را به شاه عطا کرده است تا نظمی جهانی را مستقر کند. از آن رو که تمام انسانها به طور برابر در این طرح مشارکت دارند و از طبیعت الهی که برای شاه شناخته شده است، آگاهند. دین، گرچه درونی شده است راهی الزامی برای فعالیت خلاقه انسان میگشاید مزدا همه جا حاضر است نخوص در روشنایی روز در خورشید و در آتش در عناصری مانند آب و هوا و بخصوص در خاک که قدرت مولد به آن بخشیده است نفوذ میکند رسالت انسان استقبال از این نیروی بلقوه و آزاد کردن آن است شاه نیز باید از سازمان اجتماعی مراقبت کند تا امکان آزادی حقیقت را فراهم سازد احتمالاً کورش هنگامی که رشد می‌کرد و بزرگ می‌شد و در همان زمانهایی که با اسب به شکار می‌رفت فن جنگ را می‌آموخت و به افراد پیرامون خود فرمان می‌داد احساس خوش رهایی بخش بودن را تجربه کرده بود آری کوروش هنگام سواری در دشتها و در رهای پارس تربیت دینی یافت. اردوی پارس‌ها، اتاقت پارس‌ها از مادها تحمیلی و بسیار سنگین نبود. کمبوجیه هنگامی که به پسرش آموزش می‌داد، هرگز به مبارز طلبی با پدر زنش که بر امپراتوری ماد حکومت می‌کرد، نمی‌اندیشید. نشانه وفاداری که لازم بود او به شاه آستیاگ نشان دهد قیود چندانی برای او به بار نمیآورد. میان اراده فرمان روایانه و تا حدی حد تحکم آمیز قدرت اکباتان و خسلت رمنده و سرکش پارسیان که از علاقه به استقلال مایه می گرفت نوعی تعادل برقرار بود و پارس‌ها را تحت قدرت کمبوجیه گرد آورده بود. آیا کوروش نیز به علت تبار خود معرف همزیستی مورد نظر آستیاگ نبود که فرزندان حخامنش آن را پذیرفته بودند؟ کوروش هنگامی که ولی بود نه نشانهای از انقیاد بروز میداد و نه علاقه شدیدی به پدر بزرگش داشت. برای پاسخ به خواستهای سرور خود اغلب به اکباتان میرفت. او هرگز میل افراتی به استقلال از خود نشان نمیداد و در رأس سپاهیان قبیله پاسارگاد همچنان به نظارت بر اوزا بسنده می کرد. وقتی در سال 559 با مرگ کمبوجیه کوروش شاه آنشان اعلام شد و از از همیشه آرام بود. رؤسای قبیله پاسارگاد با شادمانی شاه جدید را پذیرفته بودند و او را نه تنها از تبار حقامنش، بلکه یکی از خود و دارای تمام فضایل نژاد خیش می‌دانستند. روابط خوبی که کورش با پدر بزرگش آستیاک برقرار کرده بود علاقه ای که اطرافیانش به او داشتند و صفات خوبی که در او وجود داشت فضایی از اعتماد و امید ایجاد کرده بود با این حال در اطراف آنشان پیکارهای کوچک داخلی بین اقوام و مللی که توانایی اداره امور خود را نداشتند در جریان بود ارس مال و تباهی ناشی از تجمل و زندگی راحت بر اختلافات آنها می افزود. البته افراد سخت گوش، پاک دامن و آرمانگرای آنشان نقش مهمی در منطقه ایفا می کردند. در سال 559 سه سال از مرگ نبو نصر در بابل می و پسرش اویل مردوک نیز، بیش از دو سال با ضعف عمومی که بر کشور حاکم بود سلطنت نکرد چنانکه گویی کد نصر تمام افتخارات کلدانیان را همراه خود برده بود نریگلیسر داماد فاتح اورشلیم که بر سر قدرت قرار داشت پیوسته در معرض تهدید های دایمی در کاخی بود در حال حاضر، کوروش به طور علنی جویای هیچ اتحادی با بابلیان نبود و به هیچ وجه نمی خواست علیه اکباتان توطعه کند. او برای افزایش قدرت خود ترجیح داد به ساختن پایتختی به نام پاسارگاد اردوی پارس ها بپردازد. این دشت پهناور 24 در 15 کیلومتری که از زمان رسیدن حقامنشیان به منطقه توجه و علاقه آنها را جلب کرده بود، به نام قبیله سلطنتی خود، پاسارگاد معروف بود. این دشت غیر از طرف جنوب با کوه بلند احاطه شده بود و در معرض بادهای شدیدی قرار داشت که سوز و سرما را از درها می آورد. پیشینیان کوروش در آن مجموعه ای از صفه بزرگ ساخته بودند و بر آنها محراب هایی بنا کرده بودند که مهمترین آنها وقف اهورا مزدا و ایزد ناهید بود. مشهور بود ایزد ناهید که تقسیم کننده مقام سلطنت محسوب میشد، آب پاک نهری را که از کوه ها سرچشمه می گرفت و نام کوروش را بر آن نهاده بودند نوشیده است. محراب با سنگ های عظیم سفیدی که بر پاسنگ های سیاه تکیه داشت ساخته شده و اطراف آن را سه بنای پیوسته که به همان ترتیب ساخته شده بود دربر می گرفت. الباخره یک کوه کوچک 730 در چهل متری در نزدیکی ده متری با شش صفه متوالی قد برافراشته بود. کوروش بر آن شد که کار اجداد خود را ادامه دهد. او فرمان داد پردیس بزرگی بسازند که جویهای آب در آن روان بود که به چند حوضچه میریخت و کوشک‌هایی در آن ساخت که با فضاهای پردرخت احاطه شده بود. دو ردیف چهار ستونی سنگ سفید که روی پایهی از سنگ سیاه قرار داشت ورودی این بوستان را تشکیل می‌داد. گاوهای بالدار سنگی خاکستری سیاه چنان بودند که گویی نگهبانی می‌دادند، در حالی که گاوهایی با سر انسانی در خروجی بوستان قرار داشتند. کوروش فرمان داد در نزدیکی این بوستان کاخ بزرگی بسازند با مساحت 750 در 43 متر. با ایوان یا رواق بزرگی متشکل از دو ردیف که 20 ستون چوبی با 6 متر ارتفاع در آن قرار داشت. این مجموعه به روی یک تالار بار آم یا تالار پذیرایی و یک ورودی عظیم باز می کوروش دستور داد روی یکی از ستونهای تالار تشریفات یا بار آم کتیبه نقش کنند که بر روی آن نوشته شده بود من کوروش شاه حقامنشی هستم. اگر آستیاک از زمانی که در اکباتان مستقر شده بود این مجموعه را می دید بیگمان حرفی برای گفتن نداشت. دست نشانده او خود را شاه سادهی نشان می داد که بر هیچ شاه دیگری تسلط ندارد و در واقع فقط نوعی رئیس قبیله است. نکته نگران کننده برای مادها می توانست دیدن نقش برجستهی باشد که شاه پارس را هنگام خروج از کاخ خود نشان میداد. ظاهری پرعظمت داشت و خدمتگذاری ابزارهای مقام سلطنت را به دست گرفته بود. کوروش با ساختن پاسارگاد خود را به جهان اطراف شاهی معرفی می کرد که استقلال سیاسی دارد. کوروش در این شهر جدید که مرکب از کاخها، مهرابها، سکونتگاههای شاهزادگان، باغها و وستانها بود، پلکانی ساخته بود که 25 متر عرض داشت. دیوارهای آن که با سنگهای بزرگ ساخته شده بودند ظاهری قولاسا داشت آستیاگ بدون درک معنای عمیق این معماری سلط نگران مذاکرات محرمانه کوروش و شاه بابل بود که شایعات آن به دربار اکباتان رسیده بود نخستین پیروزی سلسلهی که نبو پولستر کمی پیش از سقوط نینوا تأسیس کرد و پسرش نبو نصر آن را با افتخار ادامه داد، در آغاز سال 555 روبه افول می رفت. نریگلی سر پس از سه سال سلطنت تازه درگذشته بود و پسرش لبشی مردوک که هنوز کودک بود دو ماه بعد به قتل رسید. توت گران یکی از افراد خود به نام نبونید را به تخت سلطنت نشاندند که پدرش فرماندار و مادرش کاهنهی آرامی تبار بود. خودش نیز از پرستندگان بزرگ خدای سین محسوب میشد. شاه جدید که مردی بسیار اسرارآمیز و صوفی منش بود تحت تأثیر تاریخ کهان منطقه قرار داشت اما معرف جنبش اندیشه هایی بود که آرامیان وارد جامعه کلدانی کرده بودند. در ظاهر چونین مینمود که نبونید جاه طلبی هایش را متوجه قرب این گنجینه دایمی که جماعات سامی تشکیل داده بودند کرده بود. با وجود این ارباب جدید بابل نمی توانست آشکارا پیوندهای بابلی خود را فراموش کند و همچون قاسبی به نظر برسد که سیاست جدایی از پیشینیان خود را در پیش گرفته است. بیگمان او در آغاز سلطنت خود هنوز حسرت سلطنت آشور را داشت چنان که هنگام تاجگزاری گفت مرا به درون قصر بردند و سپس همگی به پای من افتادند و آن را بوسیدند بارها سلطنت مرا تبریک گفتند این به فرمان مردوک خدای من بود که من پایگاه بلندی یافتم و شاه کشور شدم و از این پس هرچه بخواهم تحقق خواهم بخشید من رقیبی برای خود نمی من از سوی نبو نصر و نریگلیسر شاهان پیشین خود فرستاده کاملی هستم سپاهیان آنها به دست من سپرده شده است من تعلیمات آنها را فراموش نخواهم کرد و قلب آنها را راضی خواهم نمود با این حال نبونید در عقد اتحاد با کروش درنگ نکرد در عمل او انتخاب دیگری نداشت مادهای آستیاگ بربرهای بی احساس نسبت به عظمت آشور بودند آنها پس از پیروزی بر نینوا فقط شهر حران را اشغال کرده نسبت به بقیه امپراتوری بزرگ آشور به جز بعضی ارتفاعات بین نهرین بی علاقه بودند. آیا کلدانیان نبو نصر خواستار آن نبودند که با ساختن دیوار مشهور مادها در اطراف بابل خود را از شر آنها محفوظ دارند؟ انگیزه های دینی و سیاسی نبونید را به سوی کورش راند. شاه جدید بابل میخواست خواست را دوباره از دست ماتها بیرون آورد تا ارتباط او با جهان سامی آسان شود و به دریا راه پیدا کند. اما به ویژه مایل بود دوباره معبد سین را بسازد که سابقا افتخار شهر بود و محل اصلی پرستش خدای ماه به شمار می رفت که بربرهای شرق و شمال آن را ویران کرده بودند. قیام پارس ها علیه ماد ها به این نقشه نبونید کمک میکرد، اما او هنوز از قدرت پیشبینی ناپذیر آستیاگ بیم داشت. خوابی دید که او را کاملا مطمئن ساخت. مردوک و سین بر او ظاهر شدند و به او فرمان دادند که به هران برود و معبد سین را بازسازی کند. نبونید که به نیروی خود مطمئن نبود اعتراض کرد چگونه میتوانم توانم کارها را از سر گیرم در حالی که مادها کشور را در اشغال دارند. و مردوک پاسخ داد این مادها که تو از آن حرف میزنی زنی کشور و شاهانی که از او حمایت میکنند دیگر وجود ندارند. آنگاه نبونید هشدار این قویترین خدایان و تشویق کوروش به اتحاد عملی تردید را کنار گذاشت و اقدام به فتح شهر خدای سین کرد. در واقع آستیاگ بیش از پیش از پیشرفت کار کوروش، توطئه و اتحاد میان پارس و بابل نگران شده بود. او با چشم پوشی از اهمیت استراتژیکی هر ران ترجیح داد نیروهای خود را علیه شاه دست نشاندهش بسیج کند با این امید که او را بترساند. سپس شاه آنشان را به اکباتان احزار کرد تا میزان اطاعت او را بسنجد. اما کوروش این بار اطاعت نکرد. بلکه برعکس با گستاخی به پدر بزرگش پاسخ داد آری آستیاک من به زودی و حتی بسیار سریعتر از آن که تو بخواهی در کاخ تو خواهم بود. تکبر بی بیپایه نبود. از سالها پیش هارپاک همان مردی که آستیاگ او را معمور کشتن فرزند مندانه کرده بود و در این راه فرزند خود را از دست داده بود در صدد گرفتن شدیدترین انتقام ممکن از شاه ماد بود. او که همچون گذشته، مرد مرد اعتماد آستیاگ بود نامهای به کوروش نوشته و او را به قیام تشویق کرده بود و برای حفظ احتیاط نامه خود را در پوست خرگوشی که شکار کرده و برای کوروش هدیه فرستاده بود پنهان کرده بود. ای پسر کمبوجیه، ایزدان همچنان چشم به سوی تو دارند، پس در انتقام گرفتن از آستیاگ قاتل خود تردید نکند. اگر این امر فقط به او بستگی داشت مدت‌ها پیش تو مرده بودی. اما به لطف ای زدان و نیز به برکت اقدام من تو زنده ماندی. تصور می کنم تو باید همه اینها را از مدت پیش دانسته باشی. باید این را نیز بدانی که من به جای کشتن تو در اینکه تو را به دست شبانی سپردم در اطاعت امر شاه تعلل ورزیدم. اگر میخواهی خواهی به زودی بر امپراتوری آستیاگ حکومت کنی، پارس ها را برانگیز و با آنها علیه مادها حرکت کن. چه من سردار و در رأس ارتش ماد باشم و چه کسی دیگر چندان اهمیتی ندارد. به هر صورت این تویی که سرانجام پیروز خواهی شد. مادها منتظر همین فرصتند تا آستیاگ را سرنگون کنند و به اردوی تو بپیوندند. اینجا همه چیز آماده است و فقط منتظرت است. بی اقدام کن. کوروش با اعتماد به سپاهیان خود به ویژ قبایل پارس یعنی مارسافی ها، و پاسارگات و با اطمینان از اینکه متحدی در اردوی ماد دارد در فرستادن پیام گستاخانه و شورشگرانه به پدر بزرگ خود تردید نکرد. آستیاگ، برخلاف انتظار مأموریت گوشمالی نوه خود و به سر عقل آوردن پارسیان را به هارپاید محول کرد شاه ماد هنگام نگریستن و ساندیدن از سپاهیانی که اکباتان را ترک می کردند تا به جنگ کورش بروند هیچ تردیدی در پیروزی نداشت مگر پدر خود او هوخشتره نبود که در رأس چنین ارتشی بر سپاه بیشمار آشوریان پیروز شده بود امروز این سپاه قرار بود فقط با ملتی بجنگد جنگد که از چند قبیله آشفته تشکیل شده است. 120 هزار نفر جمعیت دارد و به زحمت میتواند تواند سی هزار نفر را مسلح کند. کوروش نیز به نوبه خود میدانست که می تواند روی دوستان نزدیک، سربازان وفادارش و حتی سربازان وظیفه حساب کند. اما همه چیز آنگونه که هارپاک پیشبینی کرده بود اتفاق نیفتاد. مادها در مرز ماد و پارس به های متعددی نایل شدند و نتیجه نبرد اصلی که دو روز طول کشید مدت زیادی نامطمئن بود. اما پیوستن فرمانده مادها همراه با تعدادی از دوستانش به اردوی دشمن وز را اندکی تغییر داد. کوروش به رغم الحاق تعداد زیادی از سربازان آستیاک به خود همچنان نگران بود. او میدانست که هست و نیست خود را به خطر انداخته است به خصوص که تعدادی از سربازان اش به پاسارگاد بازگشته بودند. با وجود این آستیاگ میخواست نخست از مغانی انتقام بگیرد که سالها پیش به او گفته بودند دیگر نوش خطری برای او ندارد. چون قبلا بر عد از کودکان پادشاهی کرده است. او که فراموش کرده بود خودش چنین تعبیری را به آنها القا کرده است دستور داد آنها را به چهار میخ بکشند. سپس تصمیم گرفت که خود به پاسارگاد پایتخت جدید پارس ها عظیمت کند. جنگ میان آریایی ها قلب نبونید شاه بابل را شادمان کرد. شاه جدید کلده از اینکه میدید می دید مادها و پارسها این برادران همخون یک دیگر را می کشند، فهمید رؤیایی که دیده بود و خدای مردوک این وقایع را برای او بازگو کرده بود به حقیقت می و مادها دیگر در وضعیتی نیستند که بتوانند از هر دفاع کنند بنابراین به سوی شهری که وقف خدای سین بود حرکت و بدون دشواری آنجا را تصرف کرد از این پس پادشاه بابل فرمان روای مرکز بازرگانی و بانکی مهمی بود که کاروان‌های شرق، بازرگانان بنادر دریایی و سوداگران شمال و جنوب از آنجا عبور می‌کردند. بخصوص با توجه به رضایت فراوان مادرش عددگو و کاهنه معبد خدای سین نبونید می توانست معبد ویران شده را بازسازی کند. آستیاگ بیگمان نگرانی‌های دیگری داشت که به فکر متوقف کردن شاه بابل نیفتاد. گروش نیز توجه زیادی به حرکات جنگی و دینی متحد بلغوهی خود نشان نمیداد. چبسا چه بسا از همان زمان جاه طلبی های جانشین نبو را دریافته بود، اما در حال حاضر یعنی در سال 555 آنچه اهمیت داشت نبردی بود که در اطراف و نزدیکی اردوی پارس‌ها در بازارگاد مقدماتش آماده میشد. نیکولاس دمشقی توصیف احتمالاً وفادارانه از نبرد ارائه می‌دهد. البته او می‌گوید که کمبودی پدر کوروش در جریان این نبرد جان خود را از دست داد. در حالی که کمبوجیه مدتها بود درگذشته بود و کوروش از سال 559 صاحب عنوان شاه آنشان بود. ولی به هر حال حکایت نیکولاس دمشقی سودمند است. کوروش با شنیدن خبر رسیدن مادها ارتش خود را به کمک مردی به نام ابار که فرد عاقل و محتاطی بود و کوروش کاملا به او اعتماد داشت سازمان داد. از آنکه تمام شهرهای مسیر لشکر دشمن را آتش زد و ویران کرد، جمعیت این شهرها را به عقب برد و در اردوی سنگر بندی شده ای، سنگر گرفت. رشتکوهایی را که مادها می توانستند از آنجا به پارس رخ نکنند اشغال کرد و پاسدار گذاشت و در مورد قله‌هایی که بر ورودیهای منطقه حاکم بودند نیز چنین کرد. با نخستین ضربه مادها پس رانده شدند. آستیاگ روی تخت بلندی که حاکم به میدان نبرد بود، نشسته بود و فریاد زد آیا ممکن است این پستخوران با چنین شجاعتی حمله کنند؟ لعنت به سرداران من اگر بر این شورشیان پیروز نشوند؟ با وجود این پارسها ها که از تعداد زیاد نفرات دشمن خسته شده بودند، مجبور شدند در حال نبرد به عقب نشینی بپردازند و در اردوی سنگربندی شده ای که در برابر آن می جنگیدند وضع خود را مستحکم سازند. کوروش با آخرین نفرات همرزم خود وارد اردو شد بیدرنگ سربازان خود را گرد آورد و خطاب به ایشان گفت ای پارسیان این سرنوشت شماست. اگر مقلوب شوید همه قتل عام می شوید. اگر پیروز شوید، دیگر بنده مادها نخواهید ماند و به خوشبختی و آزادی دست میابید. همچنین برای تقویت روحیه و شجاعت سربازان خود به آنها گفت که کشتار فراوانی از مادها کردند و به آنها توصیه کرد، هنگام شب زنها و بچه ها را به بلندترین قله پاسارگات بفرستند. فردای آن روز سردار جوان از سنگر خود خارج شد و محافظت از آن را به پدرش کمبوجیه و سربازان مسنتر سپرد و خود همراه عبار به میدان نبرد رفت. سرنوشت دومین روز برای پارسیان نحس بود. دستهای از مادها که بر جناه راست شورشیان غلبه کرده بودند به سوی اردوی سنگربندی شده حرکت کردند با پیکاری شدید آنجا را گرفتند. پدر کوروش را اسیر کرده و او را زخمی نزد شاه اکباتان بردند کمبوجیه به شاه گفت مرا شکنجه نده، روح من دارد از بدن خارج می شود پاسخ داد میدانم کوروش برخلاف نظر تو شورش کرده است من تو را برای گناهان پسرت سرزنش نمی کنم در آرامش بمیر من مراسم تشیعی شایسته مقام تو برایت انجام خواهم داد در این زن مهاجمان که بر دشت تسلط یافته بودند کوشیدند از راههایی که به قله پاسارگاد منتهی شد بالا بروند عبار متوجه شد که چه خطری هموطنان او را تهدید میکند همراه با هزار سرباز از گردن هایی که می شناخت عبور کرد و در جلوی دشمنان سر درآورد. در حالی که آستیاک با اطلاع از رزمایشی که سردار پارس انجام داده بود به بیست هزار سرباز خود دستور داد کوه را دور بزنند. اما هنوز زیاد حرکت نکرده بودند که بارانی از سنگ بر سر آنها باریدن گرفت. مادها که قبلا نقاط پایین کوه را تصرف کرده بودند، پس از دو روز استراحت به تلاش شدیدی دست زدند تا به مواضع دشمن دست یابند. پارس‌ها که غافلگیر شده بودند، با شجاعت زیاد قشون خود را به صف کردند، اما در تمام نقاط ناکام ماندند. مهاجمان به آهستگی آنها را پس راندند و آنها در حال نبرد به دامنه هایی که به قله منتهی شد پناه بردند در حالی که زنها و مادرانشان پیشاپیش پیش آنها حرکت می کردند. اما زنان پس از آن که آنها را با زبانی تند نکوهش کردند ایشان را به سوی دشمن باز فرستادند. شرمنده از گفته های زنان و دست خوش خشمی هولناک به میدان نورد بازگشتند و به کشدار هولناکی از دشمنان خیش پرداختند. سرانجام، نورد پس از وضع نامطمئنی که مدتی به طول کشید با فرار پریشان سپاهیان اکباتان خاتمه یافت. بدین ترتیب بنا به حکایت نیکولاس دمشقی، چهار قرن بعد، پستخاران بر آستیای نیز افکن پیروز شدند، او را اسیر کردند و در اختیار هارپاگ نهادند. همه تصور می کردند انتقام کسی که ستمگرانه مورد بیمهری شاه مات واقع شده بود، وحشتناک است. یک ملت شاه اکنون به گفتار هرودوت توجه کنیم که هارپاگ برای نشان دادن شادی خود به شاه سابق خویش چه گفت؟ پس از دست گیر شدن آستیاگ هارپاگ نزد او رفت به مسخره کردنش پرداخت و شاقترین ترین او اشاره به خوراکی بود که پادشاه از گوشت تن فرزندش به خورده او داده بود. و این نکته را هم پرسید که آیا وضعش در حال بندگی امروز بهتر است یا در فر و جلال پادشاهی دیروز آستیاگ نگاهی به او انداخت و سؤال متقابل کرد که آیا وی مبتکرین اقدامات کوروش است؟ هارپاک پاسخ داد به درستی که جزان نیست چون او به کوروش نامه فرستاده و پارسیان را به سرکشی ترغیب کرده است آستیاگ به سرعت گفت تو نه فقط پلید ترین بلکه احمقترین آدمیان هستی حماقت تو این بوده است که با آنکه خود می توانستی زمامدار بشوی پادشاهی را نصیب دیگران ساختی و بدان سبب وجود پلیدی هستی که برای یک شام تلخ مادها را به ورطه بندگی فرو انداختی. اگر هم ترجیح میدادی تاج پادشاهی را شخص دیگری بر سر بگذارد کاش عوض یک نفر پارسی آن را به یکی از مادها میدادی چون کسانی که مقام فرمانروایی داشتند اکنون به زلت بندگی افتادند و پارسیان که از ایشان اطاعت می عزت و سروری یافتند. بنابراین پادشاه ماد پس از 35 سال سلطنت تاج و تخت خود را از دست داد و کوروش از بالای صفه پاسارگاد می توانست در این اندیشه باشد که اکنون در رأس یک امپراتوری بزرگ قرار گرفته است. او باید نخست در باره سرنوشت شاه آستیاک تصمیم می گرفت. پیرمرد پدر بزرگ او بود. اما این امر بدون شک در ذهن پارسیان اهمیت چندانی نداشت. مگر همین سرور مادها نبود که نقشه قتل او نوه خیش را کشیده بود بیان آنکه در بند پیوندهای خونی باشد. با این حال آستیاک یک شاه شاه ملتی برادر آریایی بود و صدها هزار جنگجو خود را در عظمت ملت ماد مغلوب کننده آشوری ها سهیم می و این شاه مغلوب را پسر هوخشتره و نوه فرورتیش می دانستند. کوروش در حالی که به دشت پاسارگاد و بناهایی که او و پیشینیانش در آنجا به افتخار پارس ساخته بودند مینگریست. نمی توانست به این نتیجه برسد که همان رفتاری را با آستیاک در پیش گیرد که آشوریان و بابلیان همیشه با حریفان مغلوب خود انجام می دادند. چگونه می شد این جهانی را که از این پس می خواست بر آن حکومت کند با مرگ نخبگان آن هر چند دشمن به محض مغلوب شدن متحول ساخت؟ کوروش تصمیم گرفت آستیاگ را عف کند و پس از آشتی با حریف او را در خدمت بلند پروازی ها و هدفهای خود به کار گیرد. البته او اولین شاهی نبود که از کشتن دشمن مغلوب خودداری می کرد. اما در ذهن پسر کمبوجیه پیریزی شالوده های یک امپراتوری جهانی مطرح بود بنایی که در آن تمام نیروهای زنده و شاداب به اقوام و ملل مختلف باید سهین باشند. کوروش برخلاف سردارش هارپاک با تحقیر آستیاگ به غرور او آسیبی نرسانید به او احترام گذاشت و او را در کنار خیش قرار داد آنگاه زیر نگاه مقرور سایر قبایل پارس که تا آن زمان شاید در پیروی از رهبر پاسارگادها تا حدی تردید داشتند راه اکباتان را در پیش گرفت بدین ترتیب قبایل پانتیلها دو روزی ها دروزی ها و قبایل کوچروه دیگر مانند دائنها، مارتها، دروپیکها و ساگارتیها در پشت کورش که از آن پس پادشاه پارس بود صف کشیدند و به حرکت در آمدند. در راه، توایف متعدد ماد با شور و شوق به پیشواز کورش آمدند و او را همراهی کردند چنانکه گویی ملتی واحد در حال حرکت به سوی آزادی هستند. سازمان ارتش پارس و دموکراتیزه بودن آن های گوناگون اجتماعی را بسیج کرده بود. ارتش پارس به تمام افراد خود سلاح واحدی داده و بدین ترتیب تمایز میان گروه نخبگان و سپاهیان عادی، مزدوران و سربازان وظیفه را از میان برداشته بود. کوروش ناگهان به برکت پیروزی خود بر آستیاگ شروع به بهره برداری از این پیروزی کرد. کوروش قبل از ترک اردوی پارس، از آنجا که مایل بود شهر پاسارگاد در آینده نقش پایتخت واقعی را ایفا کند، دستور داد کاخهای جدیدی در آنجا بسازند تا خواستگاه حماسه خود را جاودانه سازد. البته کوروش نمیخواست اعتباری را که شوش پایتخت ایلام داشت دار کند، زیرا این شهری بود که اولین پاسارگادها در آن با تمدن شهری آشنا شده بودند، او همچنین از اهمیت پایتخت مادها اکباتان نیز آگاه بود، شهری که دیا ساخته بود و معماری و خزاین آن بیشمار بود. بدین ترتیب، کوروش چند هفته پس از پیروزی وارد اکباتان شد. شهری وسیع با برج و باروهای استوار دیوارهای آن طوری ساخته شده بود که کنگری دیوارهای درونی بالاتر از ردیف پایین واقع بود، چرا که امارت بر روی تپه‌ای بنا شده بود. به علاوه از این کار غرضی هم در میان بود. هزارهای گرد مزبور در هفت ردیف تو در تو بنا شده بودند، کاخ و خزانه شاهی در وسط قرار داشت. طول محیط دیوارهای بیرونی به اندازه محیط شهر آتن و کنگرهایش سفید رنگ بود. کنگره های دیوارهای دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب به رنگهای سیاه، ارغوانی، آبی و نارنجی مزین شده بود اما دندان‌های دو باروی آخر را با سیم و زر روکش کرده بودند اکپاتان هیچ شباهتی به پاسارگاد نداشت شهر ماتها درست بر عکس پایتخت جدید پارس بود اولی یک ارک یا دژ نظامی و دومی مجموعه ای از بناهای گشوده به خارج بود گویی میخواست نشان دهد که هیچ حراسی از مردم و همسایگان خیش ندارد هرقدر کروش دوست داشت در میان مردم باشد و آنها را در کار خود آزاد بگذارد همانقدر قدر اوکو بنیادگذار اکباتان به مردم و اطرافیان خود بی بود. استحکامات آخری خاص حفاظت پادشاه و دستگاه سلطنتی بود و مردم فقط مجاز بودند بیرون محووته خارجی حسارها خانه بسازند. وقتی کار ساختمان به پایان رسید، دیاوکو نخستین بار آداب درباری برقرار ساخت و از آن پس حضور در پیشگاه پادشاه موقوف شد. تمام عرایض مردم را رابطه‌ها و مهارم به ارزه شاه می‌رساندند و دیدار شخص پادشاه ممنوع بود. خندیدن یا تف در حریم شاهی گناه به شمار می‌آمد. این مقررات سنگین محض سیانت وی در قبال همگنانی تدبیر شده بود که از جهات حسب و نسب به اندازه خود او ممتاز و از اوان تفولیت با هم پرورش یافته بودند. وی اندیشناک بود که اگر ایشان هر روز او را ببینند، امکان تحریک حسادت در میان آید و شاید هم موجب تبانی آنان بر ضد او شود، ولی اگر چشم احدی به او نیفتد این پندار قوت میگیرد که وی وجودی استثنایی و برتر از افراد عادی است. کوروش خزاین شهری را که وارد آن شده بود به نام مردم خود تصاحب کرد. اما ماتها به هیچ وجه حالت مغلوب نداشتند. کمی مانند ایلامیان که تمدن خود را به پارس ها آموختند، مادها نیز به مردم آنشان الفبای سی و شش حرفی خود را یاد دادند، به آنها آموختند، برای نوشتن به جای سفال از پوست آهو و به جای چکش از قلم پر استفاده کنند، فنون جدید کشاورزی را نیز به آنها یاد دادند. در عوض، کورش نیز نوعی آزادی که متزاد با اجبارهای تحمیلی شاهان اکباتان بود، برای مردم ماد به ارمغان آورد پارسیان بدین گونه به مادها آموختند نگاهی نو به جهان خارجی بیفکنند به آنها آتش معرفت نیروی شخصیت و صفات جنگاوری بخشیدند بدین سان تمدن جدید پارسی مادی شکل گرفت کوروش باید جامعه ای را که قرار بود از آن پس بر آن حکومت کند سازمان دهد و مردم را با قدرت سلطنتی خود سمیمان هماهنگ سازد. البته ایرانیان یعنی ملت جدید پارس و ماد ملتی دموکرات نبودند. نه دموکراسی یونانیان برای آنها قابل درک بود و نه کوروش چنین چیزی را درک می کرد و می پذیرفت. بلکه ملتی شاه بودند یعنی ملتی که ضمن ادغام شدن و جوش خوردن با عظمت شاه در اقتداری ذوب میشد که توجیه خود را در مسئولیت مشترک می یافت گروش پس از استقرار در اکباتان که پایتخت سالم و دست نخورده سلطنت جدید مانده بود شورای مرکب از هفت تن از بزرگان که از آن پس شورای سلطنت نام گرفت تشکیل داد که شاه در رأس آن قرار داشت به بدین ترتیب وحدت قبایل گوناگون آریایی قلمرو سلطنت خیش را بر پایه‌ی اوستوار بنا کرد و رؤسای قبایل را خمیرمایه حقیقی همبستگی و اشتراک سرنوشت تلقی و در قدرت خود سهیم کرد این تیرههای مختلف چه یک جانشین چه کوچ رو ضمن حفظ ویژگیهای خیش می توانستند در پناه شاه ایران با آینده مقابله کنند کوروش سیاست ادغام و یگان سازی خود را با حفظ مادها در مقامات اداری خیش آغاز کرد. البته گاه در کنار یک مادی یک پارسی هم به کار گماشته میشد اما هیچ چیز این احساس را به وجود نمی آورد که امور اداری دست به دست شده است. بایگانی های پارس در اکباتان گردآوری و انباشته شد. همینطور کتیبه آریا رمنه به اکباتان انتقال یافت. همان کتیبه‌ای که در آن پس از اعلام اینکه که آریایی از تبار آریایی است یادآور می‌شد که آریا رمنه شاه کشوری است که اهو را مزدا به او انایت فرموده است جانشینی حکومت آنقدر آرام و بی سر و صدا انجام گرفت که قدرت همسایه فکر کردند هیچ تغییر به راستی مهمی در امپراتوری ماد رخ نداده جز آنکه شاید شاه جدیدی که بلند بلندپروازتر و سرکشتر از آستیاگ است به قدرت رسیده است. خلاصه آنکه همه چیز چنان گذشت که گویی کوروش در کنار پدربزرگ مغلوب خیش فقط به انقلابی درباری مبادرت کرده است. اما واقعیت آن بود که جهشی در عمق روی داده بود. کوروش در برابر شاه بابل مادها ملتی خام و بکر نبودند که کوروش بتواند به میل خود آنها را غالبریزی کند آنها طی قرنها اسکان و یک جانشینی محاسن و فضایلی را به ویژه در امور مذهبی پرورش داده بودند که هنوز برای پارسها بیگانه و ناشناخته بود در زمان آستیاگ مگ‌ها قدرت وسیعی از لحاظ سیاسی و مذهبی پیدا کرده بودند آنها که یکی از شش قبیله ملت ماد را تشکیل میدادند میانجیان ضروری میان انسان و خدایان شناخته میشدند هیچ کس نمیتوانست کمترین عمل و آیین مذهبی را بدون حضور آنها انجام دهد آنها هنگام راهپیمایی مذهبی رداهای بلند سپید می میپوشیدند و کلاه بلند تیارا بر سر میگذاشتند در برابر حیواناتی که باید قربانی میشدند که اغلب اسمان سفید جوان به نشانه پاکی و قدرت بودند به ذکر تبار بیپایان خدایان می پرداختند. به خصوص وظیفه کشتن تعداد زیادی از جانوران و حشراتی که به نظرشان زیانمند بود به ویژه موش، موش صحرایی، لاک پشت، مورچه و مگس به عهده ایشان بود. بنابراین همیشه مسلح به ابزار خاصی به نام کشنده دیوها بودند. سرانجام این که در دستگاه خدایان مادها تعداد زیادی دیو یا اهریمن وجود داشتند که به ویژه معنیس های ایشان را بعضی از مقان بسیار سالمند می کوروش در مقابل قدرت سیاسی که مقان در شهر مادها اعمال می‌کردند ناچار بود موضعی محکم و محتاطانه اتخاذ کند. این مقان پیشرفت او را پیش بینی و بیشتر ایشان خطر او را گوش زد کرده بودند. امروز در حالی که کوروش بر ماد حکومت می کرد، آنها مخالفت خاموشی را علیه کسی که به آستیاک خیانت کرده بود، در پیش گرفته بودند و از یاد نبریم که آستیاک پادشاهی بود که به آنها قدرت های زیادی بخشیده بود. دین مادها و پارسها اصول مشترکی داشت که مورد احترام تمام آریاییان بود، اما ظهور یک طبقه روحانی در ماد تا حدی اوزارا تغییر داده بود. پارسا عمیقا به اعتقادات اصیل خود وفادار مانده بودند. ایزد نور و روشنایی که مظاهر آن خورشید و آتش بود و آب پاک به پاکی آتش که ایزد ناهید مظهر آن محسوب میشد. آنها تندیس یا بنای مذهبی نداشتند و آین قربانی را در محلهای مرتفع در فضای باز و در نور کامل انجام میدادند. مادها بر برعکس تشریفات رسمی متعددی داشتند و شهود بنیادی اعتقادات پارسی را نداشتند. کوروش از تحمیل اصلاح مذهبی با احتیاط خودداری کرد. آیا بهتر نبود بکوشد چشم ملت ماد را به سوی جهان خارجی بگشاید و با این کار به رؤیای خود تحقق بخشد؟ لازم بود سیاست بر امور دینی تقدم یابد. اکنون سه قدرت در منطقه وجود داشت. پارسها، ها، کلدانیان و لیدیایی ها. ها از این پس با مادها یکی شده بودند. کلدانیان اکنون تحت حاکمیت نبونید، رهبر مذهبی و جنگی و وارث سنت بابلی مبتنی بر عظمت اجدادی اما ملهم از یک نوگرایی فاتح قرار داشتند. و در شمال لیدیایی های ثروتمند و مرفه که مجذوب یونانیان بودند و با آنها به خوبی همزیستی میکردند زمانی که کورش در اکباتان مستقر شد مدتی بود نبونید شهر حران را تصرف کرده تحت حاکمیت بابل درآورده بود به نظر میرسید که او میخواهد در پایتخت خود آسوده باشد و چندان در قید تحولاتی که در جهان پیرامونش اتفاق میافتد نیست اما ملت کلدانی زنده بود و از سرنوشت تاریخی خود فرسوده به نظر نمی‌رسید. شالوده های قدیمی جمعیت شناختی کلدانیان با رسیدن آرامیان سامی پیوسته تجدید میشد و تغییر می کرد. زیرا آرامیان در بابل شرایط کمال مطلوبی برای توسعه اقتصادی خود می یافتند. در آنجا می توانستند به اعتقادات خود را بیان کنند. اعتقاداتی که با مذهب کلدانیان هماهنگی داشت. بدین ترتیب قدرت بابل حتی بدون آنکه نبونید تلاشی کند هر روز رو به افزایش بود. میان پارس‌ها و کلدانیان مخالفت بلقوه‌ای وجود داشت. عوامل متعددی بروز تأثیرات این تضاد را به تأخیر میانداخت. نخست خاطره اتحاد مقدس علیه آشور در نیم قرن پیش که هنوز در ازهان زنده بود. سپس اینکه هم کوروش و هم نبونید با نگاه مشکوکی به مصر مینگریستند و هر دو از حجوم آن به آسیا می ترسیدند به علاوه یک سلسله ملل کوچک وجود داشتند که هر دو شاه میخواستند بر آنها تسلط یابند. جماعات شمالی کیمریها و سکاها که از لحاظ نظری جزو اتحادیه سلطنت جدید ماد پارس محسوب میشدند، ولی کماکان پیشبینی ناپذیر و خشن بودند. ملت‌های زود شکن آناتولی مرکزی نیز شکار آسانی به حساب می‌آمدند. و بالاخره ملل دیگر آسیای صغیر، لیدیایی‌ها و یونانیان مستقر در سواحل مدیترانه که قدرت اقتصادی و مالی آنها در حال گسترش بود. بی اعتمادی های زیادی مانع می که نبونید و کوروش بیدرنگ با یکدیگر درگیر شوند. به نظر می رسید کلده به رقم تحکیم دایمی کشور خود علاقهای به سیاست خارجی ندارد. پیشینیان نبونید یعنی نبوکدنسر، نبوپلسر و نریگلیسر علاقه شدیدی به گذشته کشف معابد قدیمی، جستجوی کتیبه های باستانی و باسازی کاخهایی داشتند که زمانه یا جنگ آنها را به دست فراموشی سپرده بود. نبونید بیشتر از شاهان پیشین خود به باستانشناسی علاقه داشت. این واقعیت که کلده بر روی کشورهای باستانی اکد و سومر بنا شده بود، علاقه شاهان بابل را به بازیابی ریشه های تمدنی که خود را وارث آن میدانستند توجیه میکرد. تا قبل از نبونید، هیچ پادشاهی واقعیت سیاسی منطقه را نادیده نگرفته بود، همه آنها برای افزایش قدرت، تأمین اقتصاد و افزودن بر ثروتهای خود جنگیده بودند و انگیزه های مذهبی هر قدر هم که مهم بودند آنها را از رسالت خیش باز نداشته بودند. نبونید برعکس ذهنش زیاده از حد مشغول مسائل ارفانی بود. شاه جدید بابل که از لحاظ تبار به قرب گرایش داشت، می‌خواست امپراتوری جهانی متحد آشور را به کمال برساند. از همان آشوریانی که در پس خدای آشور هیچ هدفی جز توسعه ای امپراتوری خیش در فراسوی مرزهای کشور نداشتند. باری با اینکه نبونید اغلب به شاهان آشور اشاره می کرد و آنها را اجداد سلطنتی خود مینامید ولی برخلاف آنها هیچ تمایلی به فت و کشورگشایی نداشت. شاید وابستگی زیاد او به مادرش کاهن خدای ماه او را از هر طرح بزرگ سیاسی باز می داشت. بنابراین نحوه نگرش نبونید به تب بلند پروازی های کورش را تحریک و تسهیل میکرد. پادشاه پارسها میتوانست با آسودگی خیال به آسیای صغیر بنگرد که معدن حقیقی ثروت برای اقوام و مردمی بود که رفته رفته اجبارها و ضرورت‌های طبیعی را پشت سر میگذاشتند تا به رفاه اقتصادی بیشتری که تا آن روز برایشان ناشناخته بود دست یابند. کرزوس دشمن جدید مادها در طول تاریخ خود بخصوص از سوی آشوری ها نگرانی داشتند برای این کوچروهای باستانی امپراتوری نینوا همیشه منبع مشکلات متعدد بود شاهان ماد برای محدود کردن بلند پروازی های بر دایمی آشور اغلب کوشیده بودند مواضع خود را در شمال مستحکم کنند و به ویژه سعی می کردند لیدی را به اطاعت وادارند یا لااقل به اتحادی استراتژیک با آن دست یابند. اما شاهان سارد که شیفته فرهنگ غرب بودند، قاطعانه به یونانیان علاقه داشتند و اشتغال ذهنی درجه اول آنها موفقیتهای اقتصادی بود. آنها علاقهی به مردمان آریایی حتی آنهایی که مانند مادها بهتر سازمان یافته بودند و در سال 612 پیروزی فوقلادهی بر نینوا پیدا کردند، نداشتند. او وقشتره که از پیروزی بر امپراتوری سلسله آشوری ها به خود میبالید و غرق افتخار بود به این نتیجه رسید که کشور لیدی را مجبور کند ماد را کشوری برابر با خود یا قدرتی بداند که از آن پس در صحنه سیاسی منطقه به حساب می بهترین وسیله برای رسیدن به این هدف جنگ بود. در سال 592، حادثه جزئی اندوهناکی این فرصت را برای او فراهم آورد. سکاهایی که در ماد زندگی می کردند، از طرف هوشتره، مأموریت یافته بودند، پسران اشرافزاده مادی را برای شکار تربیت کنند. سکاها و شاگردان جوان مادی آنها هر روز به شکارهای طولانی می رفتند و با گوشت شکار فراوان باز می گشتند. اما یک روز، دست خالی بازگشتند هوخشتره که ذاتن مردی تندخو بود به آنها توهین کرد و آنها را مورد مجازات و بازخواست قرار داد سکاها به قصد انتقام از آن رفتار کاملا ناروا در صدد برآمدند یکی از اطفال را که از شاگردانشان بود بکشند و از گوشت او خوراک فراهم سازند و به خورد هوخشتره بدهند سپس با شتابی هرچه بیشتر راه فرار را پیش بگیرند و به سرزمین آلیات در سارد بروند همین کار را هم کردند او وقشتره و مهمانان او قدری از آن گوشت خوردند سکاها نیز سراسیمه به سارد گریختند و خود را در پناه آلیات قرار دادند او وقشتره استرداد آنان را خواستار شد و چون آلیات امتناع ورزید جنگ بین طرفین آغاز شد و پنج سال به طول انجامید و طی آن گاهی لیدیها و زمانی مادیها غلبه کردند. در بهار سال 585 دو سپاه در امتداد رود هالیس یا قزل ایرماق کنونی با هم درگیر شدند شاه آلیاد دلیل خوبی داشت که امیدوار باشد از این جنگ پیروز بیرون خواهد آمد زیرا یک اخترشناس یونانی به نام تالس میلتی پیشمینی کرده بود که در روز نبرد خورشید گرفتگی کامل روی خواهد داد. باری آلیات که میدانست مادها مانند تمام آریایی ها از خورشید گرفتگی می تردیدی نداشت که مادها با اعتقاد به قدرت فوق طبیعی لیدیایی ها هنگام تاریک شدن هوا از نبرد خودداری خواهند کرد و با پریشانی راه گریز در پیش خواهند گرفت اما این را پیش بینی نکرده بود که لیدیایی ها نیز از گرفتن خورشید در روز می ترسند و آنها نیز از نبرد خودداری خواهند کرد هر دو لشکر در دو سوی رودخانه به این نتیجه رسیدند که خدایان مایل به نبرد آنها با یکدیگر نیستند و خواستار ترک مخاسمه شدند. هوخشتره و آلیاد از اراده الهی تبعیت کردند و بر آن شدند که محل نبرد آنها خط مرزی دو کشور باشد. هر دو شاه برای تضمین توافق خود به کسی که در آن زمان در بابل حکومت می کرد، یعنی به شاه نبو کدنسر متوسل شدند. نبو به منظور تضمین صبات در منطقه این معموریت را پذیرفت و یکی از سرداران جوان خود را به نام نبونید که بعدها پادشاه بابل شد معمور بررسی و اجرای درست توافق در محل کرد. برای تزمین امنیت بیشتر قرار شد پسر هوخشتره آستیاگ با دختر آلیاد آری زیبا ازدواج کند. وقتی کوروش در رأس شاهنشاهی جدید پارسومات قرار گرفت و از چندان با گذشته فرقی نکرده بود جز آنکه که جای خود را به پسرش کرزوس محتاط داده بود که در عین حال دایی بزرگ کوروش جوان محسوب می شد. اما وضع سیاسی نظامی جدید که کوروش با قدرت گرفتن در اکباتان پدید آورده بود، چندان خوشایند شاه لیدی نبود و دیگر به توافقی که پدرش با هوخشت کرده بود اهمیتی نمیداد. داد. اطمینان داشت که کوروش خطرناک است و برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر او باید هرچه زودتر دست به کار شد. در واقع تمام قدرت های منطقه به شدت نگران شده بودند، لیدیایی ها که به خود و متحدان یونانی و مصری خود مطمئن بودند، مصریان که نگران پیدایش قدرتی مشابه قدرت نینوا در آسیا بودند و سرانجام کلدانیان که مانند همیشه مایل بودند در برابر نفوظ شرق صد ایجاد کنند. اما کرزوس، پادشاه لیدی که ثروت و اصراف او ضرب المثل شده بود، نمی توانست بدون اطمینان از حمایت متحدان خود و به ویژه آگاهی از نظر خدایان قدرت خود را به مخاطره اندازد. او حتی اگر در باره کمک متحدان خیش در صورت وقوع نبرد نگرانی نداشت، باز مایل بود نظر مساعد خدایان را جلب کند، در واقع هر دو جنبه برای او اهمیت یکسانی داشت. آیا بهترین وسیله وادار کردن دوستان به رعایت توافقهای قبلی اثبات این امر به آنها نبود که خدایان ایشان نسبت به او نظر مساعد دارند؟ در میان تمام حاتفانی که کرزوز حتی تا لیبی به آنها مشورت کرد فقط پیتی حاتف معبد دلفی بود که کارایی خود را به اثبات رسانید. او پس از آنکه کاهنانش هدایای گرانبهایی دریافت داشتند، عقیده بسیار جالب و مهمی ابراز کرد. فرستادگان شاه سارد این پیام را از سوی حاطف برای او آوردند که خود نیز جرأت تفسیر آن را نداشتند. خدایان به کرزوس می‌گویند که اگر با پارس ها جنگ کند، امپراتوری بزرگی را ویران خواهد کرد. آنها به او توصیه می‌کنند که به نیرومندترین یونانیان بپیوندد. آنها به او میگویند که وقتی قاطری شاه مادها شود، او چاره‌ای ندارد جز آنکه مسیر سنگ لاخ هرموس را در پیش گیرد و بدون شرم از بزدلی بگریزد. رزوس شادمان از این پیشگویی حاطف که میپنداشت مساعدتر از آن وجود ندارد، از خود نپرسید که منظور کدام امپراتوری است که ویران خواهد شد. و به خصوص نیندیشید که منظور از این قاطر که بر مادها حکومت خواهد کرد چه کسی است؟ یک قاطر؟ پیتی حق داشت. کرزوس فقط هنگامی شکست میخورد که رودخانه ها سر بالا میرفتند یا چهار چهارپایی با خون مختلط بر اکباتان حکومت میکرد. یک قاطر.